من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم محتسب داند که من این کارها کمتر کنم من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم عشق دردان است و من قباس و دریا می کده. سر فرود بردم در آنجا تا کجا سر بر کنم لاله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نامفس داوری دارم بسی یا رب کراد آور کنم باز کش یک دم انان ای ترک شهرآشوب من تازه اشک و چهره راحت پرزر و گوهر کنم من که از یاغوت و لعل اشک دارم گنج ها که ای نظر در فیض بلند بلندختر کنم چون سبا مجموعه گل را به آب لوت شست کجدلم خانگر نظر بر صفحه دفتر کنم عهد و پیمان فلک را نیست جندان اعتبار عهد با پیمانه بندم شرط با ساغر کنم من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست کهی تمع در گردش گردون دون پرور کنم گرچه گردالود فقرم شرم باد از حمتم گر به آب چشمه خرشی دامند در کنم آشغان را گردر آتش می پسندد لطف دوست انگ چشمم گر نظر در چشمه کوسر کنم دوش لعلش عشوه می داد حافظ را ولی من نانم که از این افثانه ها باور کنم